بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهری الله نصلی علیه و و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین خیر مقدم میگیم به همه حضار در جلسه و کسانی که به صورت مجازی این برنامه رو دنبال میکنن در خدمت سرور موززه‌مون حضرت استاد نعیمیان هستیم با ارائه بحثی پیرامون مشروعیت سیاسی در اقلانیت مرحوم آتلا مصباح یزی که با توجه به شبهاتی که در زمان حیات ایشون و بعد از وفات ایشون مطرح شد پیرامون شخصیت ایشون و متاسفانه سیاه هایی که شد و جفاهایی که شد به شخصیت علمی این بزرگوار در نظر گرفتیم که نشستی رو ترتیب بدیم و ابعادی از شخصیت فقهی و نگاه فقهی مرحوم آیت الله یزی رو در زمینه بحث مشروعیت واکاوی کنیم این بود که در خدمت سرور معظم استاد نعیمیان هستیم با ارائه این نشست و امیدواریم که این برنامه و این موضوع مورد علاقه و توجه عزیزان دنبال کننده قرار بگیره جناب اوستاد نعیمیان در خدمتتون هستیم و اشالله این جلسه رو با امید خدا شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا و محمد و علی احل بیت طاهرین و معصولین زی موابقیت اللہ فالعرضین رخی و حباب العالمین علی الفضا با استحانت از خدای متعال و توسل و پی عمر گرامی و احل بیت عطا السلام بحثون دو آغاز میکنم متدا تشکر میکنم از حضرت علی و یاد و نام مرحوم علامه اطلاع مصباحی هستی رو بزرگ می داریم و چونان که بزرگ هست ما به یاد ایشان به تعملاتی می پردازیم چه توان کمک بکنه به مباحثی که مورد نیاز جامعه ماست مرحوم علامه اطلاع مصباح به تعبیر مقام معذر رهبری استاد فکر بودند این امر یک اقتضاعاتی داره و مهمترین نکته و اقتضاع و الزام استاد فکر بودنه است که یک فردی که میخواهد به این عنوان موسوم شود باید انضباط فکری در منظومه اندیشه او حکم فرما باشد <تصفح> <تصفح> یعنی نه تنها باید یک استاد فکر برخوردار از منظومه فکری باشه که همه گزارها همه بخش های اندیشه در اون به صورت منظم و سازماندهی شده و تعریف شده قرار بگیرند و منظومه ای که من حالا عنوان اون رو بذارم عقلانیت بر او مسایتر باشه بلکه باید یک منطق و روششناسی نیز برای طراحی اندیشه از منظر اوتر شده باشه و در واقع برای که یک فرد به عنوان یک متفکر و بالاتر به عنوان استاد فکر معرفی بشه باید نظریه‌ای برای فکر کردن داشته باشه نظام های فکری گناتونی که مد نظر او است در یک انزوات فکری بر اساسی یک نظریه مد نظر او قرار داشته باشه تا به به عنوان یک انسان متفکر و به عنوان استاد فکر مطرح بشه حبیتا اقلانیتی که امثال آیت الله مثبایی ازید دارند به عنوان اقلانیت دینی خواهد بود چرا که در یک اقلانیت مبانی، اهداف، اصول، روش و بنمایه هایی که تشکیل دهنده اقلانیت اجتماعی، تشکیل دهنده اقلانیت سیاسی، اقلانیت اخلاقی و دیگر اقلانیت ها و نظام های معرفتی نظام های بینشی و ارزشی خواهند داشت باید یک شالودی کلانی داشته باشند و همه اینها برآمده از آموزای دینی باشند آیت الله مصباح یزدی به عنوان یک فیلسوف دینمدار مدار به عنوان یک متفکر دینی به عنوان کسی که اندیشه های او از خلوص دینی برخوردار است و اندیشه های دینی او برآمده از آموزه های دینی است شناخته میشه بنابراین همه گزاره ها و همه بخش های اقلامیت او هم برآمده از دین است و هم انسجام حدتکری با یکدیگر دارند و می راهنمای انسان دوران معاصر باشند دوران معاصر ما نیاز به متفکرانی دارند که بتوانند اندیشه های خود رو به نحو احسن متکی بر فهم دینی تعریف کنند محتوای دینی باید در یک نظام معرفتی در اختیار مخاطبان مسلمان و غیر مسلمان قرار بگیره مقوله مشروعیت که مورد نظر ماست یک اندیشه یک گزاره بریده از دیگر گزارش ها و دیگر موارد نیست. بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که اقلانیت آیت الله مصباح رو چگونه بفهمیم مشروعیت عنوان بخشی کوچک از اقلانیت دینی اوست و این اقلانیت یک اقلانیت بزرگ و ستورگ است که میبایست تمام گذاره ها و تمام آموزه های فرعی رو در اون چارچوب کلان دید. بنابراین اگر بخواهیم اندیشه او را بشناسیم محدود بودن یک موضوع کفایت نمی کنه. بلکه باید ما به بنیاد اندیشه و اقلانیت فرق توجه کنیم، و از روش بنیادشناسی اقلانیت که تمرکز خود رو بر نگاه کلان بر یک اقلانیت و معلفه ها و عناصر داخلی یک اقلانیت میپردازه ما بهرهگیری کنیم شناسی اقلانیت متوجه بازخانی عناصر مرتبط با یکدیگر است بنابراین مفهوم مشروعیت و واقعیت اون مفهومی بریده از دیگر مفاهیم نیست اگر آیت الله مثبای یزدی درسی رو به عنوان فلسفه اخلاق مد نظر قرار دادن و فلسفه اخلاق رو جا انداختند و مباحث خود رو در اون ترراحی کردن چرا که ارزش های اساسی میبایست برآمده از فلسفه اخلاقی باشد فلسفی معرفت و فلسفه دینشناسی او هم چنین اختزایی دارد و سایر بخش‌هایی که به صورت عمیق و ریشه‌ای به اون می‌پروازند. جناب استاد نایمی، من یه سؤالی داشتم در واقع یک استدراک و یک استفساری از حضرت داشتم راجع به این مفهوم خود مشروعیت که اینجا دقیقا چه مشروعیتی مد نظر است؟ آیا مشروعیت به معنای مبانی شرعی مثلا بحث نظام سیاسی اینجا مطرح هست یا یک مشروعیت کلانی در تمام حوزه های معرفتی اینجا مقصود هست اگر این رو توضیح بدید برای مخاطبین ما ممنون میشم چون یه بقدار بیشتر این مشرویت یک استلاحی است که بیشتر تو بحث علوم سیاسی بیشتر استفاده میشه و مب... مب... معمولاً مبانی دینی و مبانی شرعی در واقع نظام های سیاسی رو بیشتر مورد نظر قرار میدم حالا اینو اگه بر ما توضیح ما ممنون نکته که در بحث مرکوم آیتولوم اصفایی از زیر داشت اون فیلم بود که همواره در منطق روششناسی و رو روششناسان خود به طبیلین مفاهیم میپرداختن مفهوم مشروعیت در اینجا معنای خاصی دارد که می توانیم با واژه حقانیت به اون اشاره کنیم یعنی اشان به دنبال این نیست که مفهوم مشروعیت رو از منظر جامعه شناسی سیاسی به بحث بگذارد به دنبال این نیست تا از منظر غیر دینی مقوله مشروعیت رو به بحث بگذارد بنابراین مفهوم مشروعیت یک نسبتی با آموزه های دینی خواهد داشت مفهوم مشروعیت میتواند همون معنایی که در فلسفه سیاست مد نظر است باشد و اون حق حکم راندن طبیعتا اگر در بحث دیگر ما بخواهیم به مشروعیت بپردازیم دایره مشروعیت شناسی و مفهوم شناسی ما وسیتر خواهد بود. اما اگر بخواهیم مقوله حکمرانی و دخالت در امور سیاسی و مدنظر را مد قرار دهیم طبیعتاً در اقلانیت دینی سیاسی اطلاع مسکو هستید ما باید ببینیم چه کسی، حق ورود به امور عمومی را دارد امور عمومی اموری است که به کل آهاد جامعه اسلامی برمیگردد. و آیا کسی که به عنوان زمامدار یا کارگزار حکومتی وارد اداره جامعه میشود آیا حق دخالت در امور فردی و اجتماعی مردم را دارد یا خیر بخشی از امور رو ما به عنوان امور خصوصی میدانیم و میشناسیم طبیعتا هیچ کس به طور نمیتواند از منظر دینیم تجویز کند که یک فرد بدون اذن فرد دیگر میتواند وارد حرم خصوصی اون فرد شود و به اموال او نگاه ای داشته باشد و دخالتی در امور شخصی او داشته باشد خب امور عمومی بیش از امور خصوصی از این حیث باید مد نظر قرار بگیرند آیا اگر یک فرد حق دخالت در امور خصوصی دیگران را نداشته باشد می ما میتوانیم تجویز کنیم که در حریم عمومی جامعه که شامل کل آهاد جامعه است یک فرد وارد شود بنابراین ما با اموشه کافی در اندیشه ها در عملکرد حاکم و کارگزاران حکومتی نمی‌یابیم که اداره حکومت نیازمند دخالت در امور عمومی جامعه است امور عمومی جامعه آیا نیازمند اسن برای تصرف فیزیکی و تصرف اعتباری نیست اگر حاکمی حمله به یک کشور دیگر را تجهیز کند یا حتی دفاع از یک از کشور را بخواهد در برابر مهاجمین تجویز کند این دخالت در امور عمومی است که به همه جامعه بر می‌گردد خب اینجا مشروعیت یعنی حق دخالت در اون تدبیر جامعه و بنابراین مفهوم مشروعیت اگر در جاهای دیگر در مباحث دیگر هم به کار بروند میبایست در این بخش تنظیم شود اما یک در واقع مشروعیت یک واجهی که با حق گره خورده در واقع هر جا مشروعیت هست یک حقی هم هست و در کنارش عملا یک تکلیفی هم وجود داره پس اینجا مقصود شما از مشروعیت مشروعیت در نظام سیاسی هست دیگه بله طبیعتاً طبیعتاً ما در بررسی اقلانیت دینی سیاسی آیت الله از یزدی مواجه با این قضیه هستیم که اشان هم با نگاه دینی هم با نگاه فیلسوفانه میخواهند به تحلیل و تبیین مقوله مشروعیت بپردازند چرا که تأسیس یک جامعه و واحد سیاسی مبتنی بر این است که افراد برای مشارکت در عمور سیاسی بتوانند از یک حقی برخوردار باشند. اینجا برای نکته من تاکید بکنم که اون روی کرده جامعه شناسی سیاسی هرچند در جای خود میتواند محل بحث قرار بگیرد در جامعه شناسی سیاسی لزوماً مشروعیت و به معنای حق حکمرانی نیست بلکه میتواند معادل مفهوم مقبولیت تلقی شود اینکه در یک جامعه سیاسی چه کسی جایگاه و اعتبار قانونی اجتماعی دارد این اعتبار در هر جامعه متفاوت است بر اساس منبع اعتباری که اون جامعه شناس سیاسی برای مشروعیت تلقی می کند و اون رو سراخ دارد در نظر می گیرد یک جامعه سوسیالیستی یا کمونیستی معنای از مشروعیت می تواند داشته باشد که لزوما در یک جامعه لیبرال وجود ندارد و اون قانونی بودن می تواند مبتنی بر مبنای تأسیس قانون در اون جامعه باشد بنابراین اگر ما بخواییم معنای جامعه شناسی رو مد نظر قرار دهیم باید ببینیم آیا این امکان وجود دارد یا نه در معنای جامعه شناسانه به نظر میرسد که بحث تمام شده این نیست چرا؟ چونکه میگوییم این حاکم حاکم است اما یک کسی میتواند این پرسش و مسئله را تولید کند که اگر شما میگویید او نیست، او حاکم برخوردار از اعتبار نیست، به چه دلیل حق تصرف دارد این بحث پس تمام نمیشه باید به دامن بحث فلسفه سیاسی برویم خب. بعد از بحث مفهوم ما باید در بخش های دیگر اقلانیت دینی سیاسی ایشان این تعمل رو داشته باشیم که ببینیم خواستگاه مشروعیت در نگاه آیت الله مصبا چیست میدانیم که در یک نگاه دینی اصلی ترین مبنا مبنای خداشناسانه است مبانی هستی شناسانه ما را به خداشناسی رهنمون می و مبانی ارزش شناسانه مبانی برآمده از مبانی هستی شناسانه می باشند در نگاه عدلیه یعنی شیعه و معتزله همه احکام مبتنی بر مسائل و مفاسدی جلب می شود که خداوند حکیم اونها رو در نظر گرفته است و برای تدبیر امور جامعه اونها رو به صلاح فرد و آخاد جامعه بیبیند مفهوم مشروعیت می مبتنی بر ارزشهای های باشد که خداوند متعال اونها رو بر اساس مساله و مفاسد در نظر گرفته است یکی از مبانی مربوط به خداشناسی این است که صفات خداوند کدامند؟ اگر و اوصاف ذاتی خداوند کدامند؟ ما ببینیم که مقوله‌ای به عنوان مالکیت ذاتی خداوند مد نظر آیت الله مصباح قرار دارد در و در عقلانیت دینی سیاسی و اجتماعی ایشان محور فهم مغولی مشروعیت قرار گرفته است یعنی خداوند متعال به لحاظ خالقیت و اینکه اوست که مالک ماست و مالک ذاتی انسان است او حق تصرف ذاتی در تمام عالم ممکنات رو دارد اما ماسب الله که عالم ممکنات هستند بدون اذن و اجازه خدا و نمی توانند تصرف تکوینی و تشریعی در امور دیگر داشته باشند. یعنی اگر انسانی بخواهد در امور خود حتی دخالت کند باید از او پرسید که آیا شما مالک جسم و جان خود هستید که بتوانید در او زندگی خود تصرف کنید. می بینیم که خیر به طلاع با تکیه بر مفهوم و مقولی مهم مالکیت ذاتی و خالقیت انسان این نکته رو بر میفرمایند که اوست که حق دارد حق ذاتی مال خداست اما انسان ها حتی برای تصرف تکوینی یا تشریعی در امور ذاتی خود در امور خود نیازمند یک حقی هستند که باید از خداوند به نحو اکتسابی بگیرند بنابراین مشروعیت اگر به معنای عام لحاظ شود مشروعیت تصرف در امور شخصی خود نیازمند اکتساب مشروعیت تصرف تکوینی و اعتباری از جانب خداست بر همین منوال اگر بخواهیم مشروعیت سیاسی رو که متضمن حق تصرف و حق تدمیر جامعه است به حاکم بدهیم می میبایز این حق به نهب مستقیم یا غیر مستقیم از خداوند متعال گرفته شود خب، مسئله بسیار مهم بحث نقشافرینی مردم در جامعه سیاسی و در یک واحد سیاسی سوال مهم این است که آیا برای تأسیس یک حکومت مردم حق تأسیس حکومت و حق مشارکت سیاسی دارند یا نه بر اساس نگاه دینی سیاسی و اقلانیت جامعه آیت الله مصباحی از ایشان این ایده رو برای ما دارند که مردم مسئولیت های مختلفی از جانب خداوند دارند مشارکت سیاسی نه تن مشارکت سیاسی وظیفه آهاد جامعه از کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت خب و اگر خدای متعال بحث ولایت عمومی مردم رو در بحث عمر معروف <تصفيق> به تصریح بر اشاره فرموده است خب مشارکت در اداره جامعه مشارکت در شناخت افرادی که بتوانند از صلاحیت های عمومی و تخصصی برای مناسب مختلف برخوردار باشند به اندازه وز و توان معرفتی آهاد جامعه اسلامی وظیفه آنهاست بلکه بالاتر مردم برای شرکت در انتخابات وظیفه دارند برند افراد واجد صلاحیت رو بشناسند پس مقوله اینکه مردم نقشافرین در جامعه سیاسی هستند در انتخابات هستند یک مقوله مفروض در اندیشه علامه مصباح یعقوبی و در این قسمت هیچ تفاوت اساسی با دیدگاه حضرت امام رضوان الله تعالی و مقام معظم رحبری و علمای صاحب کرسی معرفت سیاسی ایشان تفاوتی ندارند متاسفانه کسانی این بحث رو دامن میزنند و البته یک سویه و بدون پاسخگویی منطقی و طبیعتاً با توجه به وجود متون و صحبت‌های شفاهی آیت‌الله مصباح یزدی در هر جامعه در سایت ایشان در همه جا توان بگیم بسیاری به دنبال تحریف اندیشه ایشان هستند و من یک مثال سیاسی را ارز کنم. گویند آیت‌الله مصباح یزدی در ارتباط با حزبی به عنوان جبهه پایداری مشارکت فرمودند <تصفيق> اما جریان های سیاسی برای دو قطع پیسازی جامعه این جریان رو کردن یک خود به جامعه حساب میکنند نگاه های منفی بسیاری به اون نسبت میدن و از این طریق به آیتالله مصباح چنانکه که به آیتالله مصباح نگاه در بحث مخالفت ایشان با نقشافرینی مردم ارائه می میکنند و به این گروه یا به گروه های سیاسی اللهی و جناح جبهه انقلاب نسبت میدهند هدف این بحث بحث سیاسی است انگیز شناسی اونها نیاز به مستنداتی دارد که بر اساس مستندات و قرائن و شواهد میتوانیم بگوییم در صدد دو قطبی منفی بر در مواقع انتخابات هستند اینها مواص سیاسی است که گذر است اما یک اندیشه و یک اقلانیت برای فهمش ما باید به ذات اون اندیشان نگاه کنیم خب پس مقوله نقش آفرینی مردم از منظر آیت الله به عنوان یک وظیفه و بلکه مجموعه و منظومه از وظایفی است که برای تدبیر و جامعه نقش بسیار زیادی دارد مردم میتوانند با شناختهای فردی و تجمیه شناختهای فردی به ویژه نسبت به صلاحیت های عمومی در جامعه مشارکت داشته باشند و به عنوان یک وظیفه است اما اگر بخوایم از منظر بحث نقش مردم و نقش نخبگان یا کل آهاد جامعه ما در مشروعیت آفرینی به بحث بپردازیم اگر خدای متعال به امام معصوم یا پیامبر هم از ندهد که کسی را نصب کند، او همچنین حقی نخواهد داشت. پس اگر گفته شود که مردم از منظر مشروعیت آفرنی به بنی خاص، نه به بنی گاهی مثلا در تعابیر عامی که رهبر معظم انقلاب به کار میبرند می‌فرماید می مردم می توانند مشروعیت بخش باشند اون معنای عامی است که سر جای خود معنای درستی دارد اما اگر بخوایم بگوییم که وقتی که هیچ کس برابر اصل اصل عدم ولایت احد علی احد هیچ کس حق ولایت بر دیگری ندارد حتی پدر و مادر حق تصرف در اموال بچه در شؤون کودک خود را ندارند مگر اینکه خدای متعال به آنها چنین ولایتی بدهد به طریق اولام هیچ کس نه حتی فقیه نه مردماتی عادی بلکه فقیه هم اگر از خدای متعال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اذنی برای ورود در امور ولایی و امور امری نداشته باشد به طریق اولا افراد معمولی هم نخواهند داشت یعنی در فقیه ما این زمینه رو میبینیم که بتواند به خاطر علم خود در تدبیر جامعه مشارکت کند اما این کفایت نمی کند بلکه باید خداوند متعال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق الله رامس و, و, و از طریق علم علیکم و السلام به فقی یا دیگر آهات جامعه برای تدبیر جامعه برسد این نقش مردم در تأمین مشرویت اگر مشروعیت رو به معنای تأمین حق حکمرانی به معنای خاص بدانیم ازنی که از مردم بخواهد صادر شود باید خود مردم برای مشارک برای دخالت در امور عمومی جامعه حقی داشته باشند اما اون وظیفه‌ای که ما گفتیم با این حق چه نسبتی دارد یک مثلا تعبیر فنی می توانیم اینجا به کار ببریم بعضی از حقوق به نحو مستقیم از طرف شارع متعال می برای یک که جامعه یا برای بخشی از آهاد جامعه جعل شوند اینها میشوند حقوق شرعی در این و شرعی بودن یعنی اینکه جعل شرعی به اون تعلق گرفته باشد اما در برخی از موارد ما تکلیفی رو میبینیم عقل با لحاظ و دیدن اون تکلیف و مسئولیت مفهومی رو به عنوان حق انتظامی کند اینجا این حق لازمه عقلی یک مسئولیت است اگر مثلا یک پدری پدر است و وظایفی بر دوش او نسبت به تربیت فرزند دارد فرزند عقلی دارد میگوید عقل من این تصویر ذهنی رو از مسئولیت داشتن پدر به دست می آورد که من حقی نسم حقی دارم خب لازم نیست که حق حتما در این مورد به صورت مستقیم توسط شارع متعال جهل شود اینجا تصویر برداری عقلی کفایت میکنه که ما بگیم او حق داره اما تفاوت داره یک جایی حق حق شرعی است حق شرعی ویژگی های دارد حق شرعی میتواند اسقاط پذیر باشد زوال پذیر باشد انتقال پذیر باشد اگر بگوییم در بحث مشروعیت بنده به عنوان عضوی از جامعه حقی داشته باشم حق خود رو می توانم به فرد دیگری منتقل کنم می توانم در انتخابات شرکت نکنم تصور بکنید که مردم صرفاً بخواهند بر اساس نگاهی که برآمده از حق است و نگاه مبتنی بر قرارداد اجتماعی که در ادامه بحث با اون پرداخت از این منظر ارتباط با مقوله ارتباط با مشروعیت اگر بخواهیم از این منظر بپردازیم چه بسا همه آهاد جامعه بگویند ما نمیخواهیم در انتخابات شرکت کنیم. اگر حق باشد، افراد گناهی مرتکب نشدهاند حق به من چه معنا حق ونای شرعی مجعول مستقیم توسط شاریه. همونطور که در زندگی شخصی من حقی دارم، حق خود رو در امور مالی خود می توانم به فرد دیگر منتقل کنم، می توانم حق خود رو نادیده بگیرم، می توانم حق خود رو اسقاط کنم و حرامی در این کار مرتکب نشدم بنابراین در امور اجتماعی سیاسی و مشارکت مسئولیت مشارکت وظیفه مشارکت وجود دارد برای تأسیس یک حکومت دینی همه آهاد جامعه وظیفه دارند همه آهاد جامعه باید در کمک به فوقه که از طرف امام منصوب برای تأسیس حکومت مشروعیت پیدا کردن وظیفه دارند مشارکت کنند. پس اگر اینجا مفهوم حق را به معنای حق شرعی بگیریم حق به معنای عام بگیریم معنیش این است که من می توانم در انتخابات شرکت نکنم چرا؟ که حق شخصی من است کل جامعه هم میتوانند این حق را اسقاط کنند و گناهی مرتکب نشدند در صورتی که اینجا وظیفه مشارکت برای تأسیس حکومت اسلامی هست بالاتر از حق است. یعنی هر نیست که یک تکلیفی در کنارش هست نه نه نه نه در کنارش بلکه تکلیف است که افتدا جعل شده کلکم را و کلکم مسئول این تکلیف است. ما از این تکلیفی حقی انتظار میکنیم و تصویر برداری عقلی از این وظیفه مستلزم این نیست جا تجویز کننده این نیست که من بتوانم این حق رو ساقت کنم آیا من حق دارم وقتی که میبینم کودکی مورد ظلم قرار گرفته میبینم رژیم نسلکش کش و قاصب اسرائیل کودکان مسلمان و بزرگان و نوجوانان و همه جامعه رو میکشد آیا حق دارم نگاه کنم و دفاع از اون نکنم نه وظیفه دفاع دارم البته به اندازه مقدور خب کسی که قدرت بیشتری داره وظیفه داره آیا می اون میتونه من حق دارم اینجا از این وظیفه انتظاع حق دارد او البته انتزاع حق رو که اون کودک انتظار میکند اون فرد مظلوم انتظام کنه آیا اون می تواند بگوید این حق من است و من حق خود رو از شما برداشتم من نمی خواهم شما از من حمایت کنید خیر این حق حق عقلی است خب اگر اجازه بفرمایید ما برای تکمیل بحث مشروعیت به نقد و بررسی منطق و فلسفه رقیبی بپردازیم که بدون اون ما نمیتوانیم اندیشه مشروعیت رو در اندیشه دینی به نحو مناسب بفهمیم فرمایشی دارید من استفاده کنم در قسمت پیش از ورود به بحثه میخوام نقط قرارداد اجتماعی را خاصی نیستش نه فقط اگر یه مقدار به خاطر اینکه وقتمون زیغ هست یه مقدار به صورت خلاصه تر و موجب مطالب رو بیان که به همه مطالب پرداخته بشه ممنون اگر ما بخویم اندیشه ای آیت الله با و دیگر علما رو در بحث مشروعیت بفهمیم اولا بدانیم که اندیشه مشروعیت آیت الله مصباح با, با گفت، گفتمان رایج و تاریخی شیعه تفاوتی ندارد. با اندیشه حضرت امام اندیشه یا اطلاع تفاوتی ندارد ادعای تفاوت میباعث مستند باشد که چون این ادعای جزی پندار و تمسکات به اندیشه های ژورنالی چیزی نیست و اهداف سیاسی خاصی که باید در تحلیل های سیاسی اجتماعی مد نظر قرار گیرد به این مقوله پرداخته شدند رقیب اندیشه دینی در بحث مشروعیت نظریه قرارداد اجتماعی نظریه قرارداد اجتماعی که خود اون نیاز به بررسی مفصلی دارد من شاید در مجموعه جلسات بیش از ده جلسه به این بحث در متن مفصلی این رو بحث کردم و پایه های اساسی اون بر اساس اندیشه علامه مسبایی از است و اون این که قرارداد اجتماعی مفهوم و معموله است که در فلسفه سیاسی قرد برای بازخانی مبانی پیشین شکل گرفته کسانی مثل حاغز و رسو در یک اندیشه ورزی خاص از مقوله قرارداد اجتماعی استفاده کرده اما ما نمی توانیم اون قرارداد اجتماعی رو در صورت تاریخی او قابل استناد بدانیم اند قرارداد اجتماعی که اونها تراری کردن برای تأمین مشروعیت یک حکومت و حکرانی یک حاکم قابل اثبات نیست قرارداد اجتماعی چه شعنی دارد؟ اگر بخواهد یک حاکم به حکومت بپردازد میباید از حق و یا نیجیتیبیسی برخوردار باشد آیا سوال در سه فاز ما می توانیم بحث در سه می توانیم قرارداد اجتماعی رو به نقد بگذاریم یک در زمینه ای در از منظر تحقق پذیری قرارداد اجتماعی از منظر دوم منظر فلسفه قرارداد اجتماعی و از منظر شرعی از منظر وقوعی و تحقق پذیری باید گفت که قرارداد اجتماعی کارویجش این است که به تأمین مشروعیت به عالیترین سطح و جامعه ترین صورت بپردازد تا یک حاکم بتواند حکمرانی کاملی داشته باشد یک مقدمه کوتاه اشاره کنم برای این قسمت و اون اینکه حق حکمرانی به این معناست که یک حاکم و مجموعه حکومت و مجموعه کارگزاران باید یک حق تصرف در طبیعت را داشته باشند اداره جامعه بدون حق تصرف در محیط زیست امکان ندارد و این حکومت نخواهد بود در کوها، دشتها دریاها، آبها معادن حق تصرف باید برای حاکمیت وجود داشته باشد خب سؤال این است این حق را قرارداد اجتماعی باید از یکایی که آهاد جامعه بگیرد و آهاد جامعه چون این حقی داشته باشد بگیرند و او بدهند تا خب آیا یک حاکمیت می تواند چون کار داشته باشد اون هم باید وقوع اون هم از منظر خاصگاه فلسفی اون بست شود و هم از منظر شرعی خب نکته دوم مورد دوم حق تصرف در زندگی خصوصی مردم در مواردی که حیث عمومی داشته باشد دو حق تصرف در زندگی و اموال و امور شخصی خود کارگزاران و حاکمان و مورد این موارد ریزکاری های فراوانی دارد جزیات فراوانی دارد همه اونها رو باید به نهر کامل حاکم داشته باشند اگر یک حاکم میخواهد به جنگ با دیگر کشورها بپردازد باید حق کشتن افراد دیگر کشورهای مهاجر رو داشته باشد. آیا چون این حقی دارد باید قرارداد اجتماعی رو تعمین کند باید حق ورود به کشور همسایهی که مهاجم است رو داشته باشد چه برسه به این که دفاع کنه خب پس آیا وقوعا آیا فرض بگیریم همه مردم از همه این حقوق به نحو کامل برخوردارن آیا میتوانن آیا امکان دارد یک قرارداد اجتماعی کامل وجود بگن یک مجموعه افرادی که دیوانه هستند؟ مثل چی میفهمند که بخوان حقوق خود را به دیگری منتقل کنند. کودکان و نوزادان چگونه می حق خود را به یک حاکمی منتقل کنند امکان, امکان ندارد. و کسانی که در قرارداد اجتماعی شرکت کردند و فرض بگیریم همه حقوق خود را به حاکم منتقل کردند به نح کامل یک سال بعد از مشارکت در انتخابات میتوانند بیایند بگویند که ما حقوق خود رو میخواهیم پس بگیریم حق مرو پس بده اگر واقعا حق باشد و مردم به نحوه جامعه از این حقوق برخوردار باشند باید بتوانند حقوقی رو که به حاکم منتقل کرده اند پس بگیرند آیا قرارداد اجتماعی محقق شده میتواند تضمین کننده یک حکومت مستقر باشد خیر. این بحث اول. بحث دوم، از جهت فلسفی که اگر بنده به عنوان یک عضو از جامعه بخواهم حق خود رو به حاکمی، کسی که نامزد حاکمیت است منتقل کنم، باید حقی داشته باشم حق هم جامع باشد حق بنده هم قابل انتقال به غیر باشد اگر خدایی نداشته باشیم یا خدا را قبول نداشته باشیم در نگاه غربی این حقوق از کجا آمده است به چه دلیل آهاد جامعه و شهروندان از حقوق محدود و بالاتر حقوق کامل برخوردارند چه منطقی و چه استدلالی میتواند این رو ثابت کند در دوران دوم خورداد وقتی که اصلاح طلبان از اثبات فلسفی دموکراسی ناامید شدن سراغ رورتی رفتن رورتی یک پراگماتیست است و او رو به ایران دعوت کردند. دموکراسی نمیتواند به صورت فلسفی از طریق قرارداد اجتماعی که پایه دموکراسی خود رو کند دموکراسی یعنی حکومت اکثریت هرچند مشارکت مردم از طریق قرارداد اجتماعی باید مشروعیت پیدا کند اما مشکل اساسی این است که آیا مردم آهاد مردم از این حقوق برخوردارند چقدر از حقوق برخوردارند حد از کجا آورده باشند اگر خدایی نداشته باشیم، اگر خدا رو قبول نداشته باشیم، اگر مالکیت ذاتی خداوند پشتوانه تأمین مشروعیت نباشد، امکان ندارد. بنابراین در این قسمت ما می‌بینیم که علامه مصباح ازیر رزمانه الله تعالی علی از این طریق به نقد دموکراسی میپردازند. که آیا مردم پشتوانه دموکراسی دموکراسی مبتنی بر قرارداد اجتماعی است براساس اندیشه الله مصبا تمام آهاد جامعه باید حقوق خود را اثبات شده داشته باشند نه صرفاً با فرض و ادعا مسئله بعد انتقال این حقوق به حاکمیت است فرض بگیریم از جهت وقوعی امکان پذیر باشد اما آیا و مردم که خدا نیستند، مردم از مالکیت ذاتی برخوردار نیستند. اگر شما مالک جسم و جان خود نیستید و حقوقی رو به نحو ذاتی ندارید، آیا نسبت به دیگران حقی دارید؟ به چه دلیل حق تصرف در امور دیگران را دارید؟ و برفرض اگر حق تصرف در امور ات... تصرف اعتباری یا تکوینی در امور دیگران برخوردار باشید به چه دلیل به دیگران می توانید حق رو منتقل کنید خود این یه حق است باید حق انتقال حق خود رو داشته باشید آیا اینها پیش فرصای ثابت شده است یا فقط مفروض است یا عملگرایی ماست که اینها را فرض گرفته است و در مجموع بعد این بحث دوم هم باید حقی من داشته باشم حق من باید جامعه باشد شما هم باید حق داشته باشید این آقا هم باید حق داشته باشید حقوق جامعه داشته باشند بعد حق تصرف در امور دیگران حق تصرف در طبیعت همین باید باشد و یک حق دومی هم نسبت به این حقوق داشته باشیم انتق... حق انتقال رو داشته باشیم بعد از حق پس گرفتن رو هم نداشته باشیم. اگر داشته باشیم حکومت ناقص خواهد شد. از جهت وقوعی اگر نیمی از مردم به یک نامزد رأی دهند و نیمی از جامعه به نامزد دوم رأی بدهند ما باید به لوازم فلسفی این مبنا ملتظم باشیم. پس با تفاوت آرا که همیشه در نظام رایگیری دموکراتیک هست جامعه، حکومت جامعه خود به خود چند چندباره میشود من حق خود رو به آقای الف منتقل کردم ولو که او اقلیت است الان حق من به او منتقل شد او هم حق ندارد ری خود رعی گرفته شده را به فرد دیگری که رعی اکثریت دارد منتقل کند خب حالا فرض بگیریم این نقد دوم از منظر دوم که فلسفی است قابل پذیرش نبش ما اگر بخوایم به دموکراسی کمک بکنیم اون محور محورسبین است که یک دینی که با خدای متعال مرتبط است دموکراسی غربی خود رو بینیاز از خدا دانسته است. خود رو مبتنی بر خدا انگاری فرض نگرفته است، فرض گرفته است که مردم حقوق خود بنیاد دارند. اما ما نقض زدیم که این حقوق خودبنیات قابل اثبات نیستن و ناقصند و انتقال نیستند نیستن مشکلات عدیده فلسفی دارند. اما اگر ما بخوایم به دموکراسی کمک بکنیم یک راه این است که این حقوق رو از منظر شرعی اثبات کنیم که خداوند متعال به یکایک جامعه داده است حق انتقال اونها رو هم به یکایک جامعه داده است که اینها اثبات نیست اون حقوقی هم که در های مثل یهود و اسلام وجود دارد و در مسیحیت بسیار محدود خب اینها به این صورت قابل تصویر نیستند بنابراین دموکراسی اگر با کمک شر بخواهد استوار شود بنابر اندیشه های طلاق نسبا قابلیت چنداری ندارد اما خدای متعال ما راه دیگری داریم اذن رو به پیمانبر و امام داده است و غیر مستقیم به فقیه بنابراین مشروعیت حکومت از طریق قرارداد اجتماعی که از حقوق خود بنیاد نداشته و تخیلی بخواهد اثبات شود وجود امکان ندارد چنانکه قرارداد اجتماعی در سیر تاریخی هم وقوع تاریخی نداشته تمام این قراردادهای اجتماعی که از منظر شما در دموکراسی می توانیم پیدا کنیم دموکراسی ناقص است دموکراسی قرارداد اجتماعی کامل ندارد و نمیتواند داشته باشد دموکراسی ها مشارکت های بسیار محدود مذبذب تزلزل هستند پس حتی اگر بخوایم پشتیبانی دینی رو هم برای مشروعیت بخشی آراء مردم به صحنه بیاوریم از جهت وقوعی باز همین خلا وجود دارد در بسیاری از موارد مشارکت های بسیار اندکی داریم خب این مشارکت اندک اولا آرارو پاره پاره کرده بنابراین حکومت چند پاره شده اگر انتقال حق من به نفری به عنوان نام زده مغلوب یا غالب صورت گرفته پس حکومت چند پاره شده مگر اینکه ما در اندیشه دینی بپردازیم خب حالا نقش مردم در تعین رئیس جمهور در تعین نمایندگان مجلس در تعیین هر فرد ای... که از طریق صندوق آرا به دست می آید اینجا میتواند ای... رویکرد دیگری به کمک ما بیاید و اون اینکه که مردم مخش... نقش کاشفیت دارند کاشفیت این محدودیت ابراز رای را ندارم یک نکته آخر رو هم عرض در خدمت شما باشیم و اون اینکه مفهوم رعی اکثریت رو ما باید تحلیل بکنیم تحلیل ری اکثریت رو من با یکی دوتا مثال ارز کنم. اگر شما در این جلسه فرض بگیرید که ما به عنوان شورای پزشکان نشسته باشیم و بخوایم در مورد عمل جراحی یک بیمار سخن بگیم و ابراز رعی کنیم رعی ما به هیچ وجه نمی تواند به عنوان ابراز خاص و میل و اراده ما تلقی شود رعی اعضای شرکت کننده صرفاً می بایست بر اساس تفسیر به این بر این اساس تفسیر شد که اون آرا صرفاً بیانگر شناخت های ما باشند و مصلحت شناسی شورای پزشکان است که از طریق آراي اونها حق ابراز دارد اما اگر ما بخواهیم یک مسافرتی برویم ده نفر 20 نفر پنجاه نفر اینجا آرای ما لزوما قرار نیست حکایتگر اصلت شناسی و شناخت های ما باشند. اشکال ندارد میتواند بیانگر حقوق ما باشند و خواسته های ما، اراده های شخصی ما به این تعلق بگیرد که از این مسیر به مسافرت برویم یا از آن مسیر و اختلاف خواست ها از طریق رعی انجام شود چرا که جز مسافرت با یک ماشین نیست ماشین بعد یا از این برنمت یا از اون برش و رأی اکثریت میتواند موضوعیت داشته باشد و این آرا طریقیتاش بخواسته است بنابراین این رأی اکثریت در موضوعیت دارد چنانکه در تشکیل یک شرکت با سهامی خصوصی خود یا سهامی عام یا سهامی خاص اعضای شرکت کننده در حیط و منا اگر سهامدار هستن هستند خودشون اینها فقط درست است بهتر است مثلا شناسی بکنن ببینن این شرکت به چه مسیری برود بهتر است اما چون مالک مجازی هستند مالک اعتباری هستند حقوق شرعی بر اون تعریف شده اینها حق دارند رأی بر اساس مالکیت خود بدن خواست خود رو کسی هم نمی تا اونها رو بله می توانند نامه از اول بپذیرن که بر اساس میل شخصی رای ندانن صرفت مسئله سنجی کنند اون یه توافق جداست که خود اون هم بر اساس میل اون اونهاست اما حکمرانی چیست آیا شرکت سهامی است آیا احزاب و نمایندگان مجلس باید بر اساس خواست مردم خاست درست یا غلط اشتباه و درست مردم رای دهند خیر آیا اعضای مجلس خبرگان باید طبش تمایلات شخصی به کسی به رهبر رحبر دهند خیر؟ چون حقی ندارند پس اینجا حق نیست اینا انتخابات در انتخابات داخلی مجلس خبرگان در انتخابات و در رعیگیری های داخل مجلس رعیگیری میکنند اما حق ندارند طبق میل و خواست خود و حتی میل و اراده تغییر پذیر و پرتنبوه نموکلین رای دهند بلکه حتی آهاد جامعه صرفا وظیفه دارند بر اساس تشخیص رای دهند. البته با تسامو در تعاویر در سخندانی ها می توانیم بگیم آقا هر کسی را خواستید رای بدهید اما همواره اونا توصیل کنیم برید فرد ساله و اصلح رو تشخیص بدهید این نکتر رو هم عرض کنم که بحث مشروعیت بخشی آرای مردم در تحلیلات علامه اسبا اینجا منتفی است اما هیچ تنافی با دیگر نقشافرینی ها ندارد و بلکه بالاتر ایشان قائل به وظیفه مردم هستند چنانکه در داخل مجالس و شوراها نیز چنین تلقی وجود دارد بنابراین مشروعیت از طریق آرا هنگامی میتواند ایجاد شود که رعی مردم و رعی اکثریت مردم یا آرای اکثریت در شوراها و مجالس رهگیری محوریت داشته باشد و خواستهای اونها باشد اما اگر اونها وظیفه دارند و آرای اونها بیانگر تشخیص ها باشد اینجا از طریق رعی اکثریت به تشخیص می میرسیم ولی اینجا هم مظیفه دادن رای بلکه وظیفه شناسایی رای اسلح رو دارند و مشرویت بخشی به معنای عام است که صرفا میگوییم مردم مشروعیت بخشند اما به معنای خاص و اصطلاحی فقهی و کلامی و برخور ایجاد و اون حق حکمرانی آرانه میتواند در... در واقع اون چیزی که ملاک هست کشف اصله هست و در این کشف اصله مردم وظیفه دارن که همکاری کنن تا اصله کشف بشود این معنا بله. در نتیجه کسانی که تلقی آیت الله مصباح رو به معنای نادیده گرفتن مردم تلقی می کنند کاملا نادرسته است. از جهت عملی ایشان هیچگاه توصیه نکردند که مردم انتخابات شرکت نکنند مردم رأیشون تشریفاتی از این جهت نیست ری مردم تزی نیست اینها اتهام هایی است که برای بازی های سیاسی یا برقی موارد ممکن سوء تفاهم باشد این نکته رو من هم عرض شاهد در مجله متین که مربوط به آثار حضرت امام است در شماره یک با آیت الله بیسپای یزی مصاحبه دارند اونجا تصریح دارند که اگر اگر آرا برابر باشند، خواست مردم هم اونجا می یک طرف رو تعیین کننده باشد برای تعیین رهبر. اگر کاملا آرا برابر باشند برای تقویت رهبر منتخب اون ری که حمایت مردمی بیشتر دارد می توان باشد بنابراین. بحث از فلسفه سیاسی است بحث از نگاه دینی کلامی است نباید با بحث های سیاستگزاری اجرایی مخلوط شود که سیاستگزاری مردم حضرت علام مصفای از الله تعالی علیه با حضرت امام و مقام معذر رهبری در این قسمت کاملا همسوی فکری دارند چنانکه که تعبیر امام این ما مفاهیم مفهم مثل تاووت رو در اون جایی که رأی ولی فقیه در تصویب یک امنه نباشد رو به کار بردم الحمدلله رب العالمین تشکر میکنیم از جناب استاد نعیمیان با توجه به اینکه وقت ما هم دیگه تمام شده از ایشون درخواست می‌کنیم که انشالله در یک جلسه دیگری به ابعاد دیگری از این موضوع بپردازن از اینکه قبول زحمت کردن و این بحث رو ارائه کردن ازشون تشکر میکنیم باز از حزار گرامی و کسانی که از طریق شبکه های مجازی مورد دنبال میکنن هم کمال تشکر رو داریم و سلام علیکم و رحمت الله و